داستان سوم مردی بسیار پیر با بالهای بسیار بزرگ در سومین این روز بارندگی توی خانه و اندازهی خرشنگ کشت افتاده بود که پلایو مجبور شد از حیات پرگل و شل رد شود و آنها را توی دریا بیندازد نوزادشان تمام شب را تب داشت و آنها فکر میکردند که به سبب آن بوی نامطبوع است دنیا از روز سشن به غمنگیز شده بود رنگ آسمان و دریا به رنگ خاکستری ماتنباری گراییده بود و ماسه های ساحل که در شبهای ماه مارس با نوری تند و بیپروا می به آمیزهای از گل و صدف بدل شده بود بنگام ظهر زهر روشنایی چنان ضعیف بود که وقتی پلایو پس از بیرون ریختن خرچنگ ها به خانه باز میگشت. به زحمت توانست آنچه را که در انتهای حیات می جنبید و مینالید تشخیص داد. مجبور شد خیلی نزدیک برود تا مرد پیری را ببیند، مردی بسیار پیر که با صورت میان گلل های افتاده بود و هرچه چه میکرد نمیتوانست نمی بلند شود، را که بالهای بسیار بزرگش مانع بلند شدنش میشد پلاو هر آسان از آن کابوس دوید تازنش الیزندارا را که میکوشید با حوله تر تبه بچه بیمارش را پایین بیاورد خبر کند و او را با خود به پشت حیات برد و هردو به آن اندام بر زمین افتاده بیحث و گنگ و خاموش نگریستند. مانند کهنه چینها و آشقالی ها لباس پوشیده بود. تنها چند تارموی رنگ باخته در کله تاسش و چند دندان در دهانش به مانده بود. و وضع و حال نکبتبار و عصفانگیزش به منزله پدر بزرگی خیس و در گل و شل فرو رفته هر گونه شعن و شوکتی متصور را از او گرفته بود. بالهای شاهینوار بسیار بزرگش، کسیف و نیمه پرکنده در گل فرو رفته بود. پریا و علی، زنده چنان طولانی و دقیق به او نگریستند که خیلی زود بر شگفتی خیش چیره شدند و سرانجام با او معنوس شدند. آنگاه جرأت یافتند با او حرف بزنند و او با لهجهی نامفهوم و با صدای نیرومند یک ملوان به آنها جواب داد بدین قرار بود که آنها بالهای مزاهمش را نادیده گرفتند و با بصیرتی کامل به این نتیجه رسیدند که او تنها بازمانده کشتی بیگانه است که طوفان آن را در هم شکسته است با این همه زن ای را که از همه چیز درباره زندگی و مرگ آگاه بود صدا کردند تا او را ببیند و او کافی بود تنها نظری به پیرمرد بیاندازد تا آن را متوجه اشتباهشان بکند. زن همسایه با آنها گفت او یک فرشته است حتما به خاطر بچه آمده اما تفلک بیچاره آنقدر پیر است که باران دخلش را آورده. روز بعد همه میدانستند که یک فرشته واقعی در خانه پلایو در اسارت است. علارغم قضاوت زن دانای همسایه که در نظر او در آن روزگار فرشتگان بازماندگان آواره و گریزپای توتئی آسمانی بودند، دل و جرأت آن را نداشتند که به ضرب چماغ او را از پا درآورند. پلایو با باتونی در دست تمام بعد از ظهر او را از آشپسخانه میپایید پیش از آن که برخت خواب برود او را از میان گلولای بیرون کشید و همراه مرقه در قفس سیمی محبوس کرد نیمه شب وقتی باران بند آمد پلایو و الیزنده همچنان به کشتن خرچنگ ها مشغول بودند اندکی پس از آن بچه بیهیچ تبی بیدار شد و معلوم بود که خیلی گرسنه است آنگاه آنها با احساس بزرگواری و نظربلندی تصمیم گرفتند فرشته را همراه با آب شیرین و آزوغه سه توی کلکی بگذارند و در دریای آزاد به دست سرنوشت خیش بسپارند اما وقتی همراه با نخستین روشنایی سپیددم پا به حیات گذاشتند دیدند که تمام همسایه ها جلوی قفس مرخا جمع شده و با فرشته شوخی و تفریح می کنند بدون کمترین حرمتی از توی شبکه های سیم چیزهایی را برایش پرت می کنند تا بخورد انگار که او موجودی آسمانی نبود انگار حیوان سیرک بود پدر گنزگا قبل از ساعت هفت با حالتی متوحش از خبرهای عجیب و غریب خود را به آنجا رساند. تا هنگام، تماشاگرانی که کمتر از جمعیت کله صحر احمق مینمودند از راه رسیده و درباره آینده مرد محبوس به انواع و گمان رو میآوردند. میان آنها ساده دلترینشان فکر میکرد که بایستی به او عنوان شهردار جهان را بدهند. دیگران که نظر سخت تری داشتند، احساس می کردند که او را به درجه یک ژنرال پنج ستاره ارتقا دهند تا در همه جنگها پیروز شوند. گروه دیگر که رویایی و خیال باف بودند، امید داشتند که از او تخم و ترکی را بیاندازند تا نژادی از مردان بالدار عاقل به وجود بیاید که به تواند مسئولیت جهان را، به عهده بگیرد اما پدر گنزگا پیش از آن که یک کشیش باشد ایزوم شکنی سالم و تنومند بود در کنار قفس ایستاد کتاب پرسش و پاسخ دینیش را در یک آن از نظر گذراند و از نزدیک نگاهی دقیق به آن مرد فلک زدن انداخت که در میان جوجه های سراسیمه بیشتر به مرغی حیولاوار و فرتود شباحت داشت در گوشه میان پوست میوه ها و پسمنده های ای که سرخیزان برایش پرد کرده بودند دراز کشیده بود و بالهای گشودش را در پرت و آفتاب خشک می کرد بیگانه با گستاخی و فضولی دنیا تنها چشمان باستانیاش را بلند کرد و انگامی که پدر گنزاگا توی قفس جوجهها رفت و به لتین به او صبح خیر گفت به لحجه خود چیزی را زیر لب زمزمه کرد کشیش بخش وقتی دید که او زبان خدا را نمی و نمی‌داند چگونه به کشیشان سلام کند اولین بارغه بدگمانی نسبت به دقلبازی و تزویر او در دلش راه کشود آنگاه متوجه شد که از نزدیک شباهت بیشتری به انسان دارد بوی تحمل ناپذیر هوای آزاد و بیابانها را می‌داد. پشت بالهایش از فضولات پوشیده شده بود و پرهای بزرگش با بادهای زمینی و این جهانی و در حال و حوش او چیزی نبود که با شعن و وقار فرشتگان هماهنگ باشد آن وقت از قفس جوجهها بیرون آمد و با اجرای رسمآینی مختصر مردم کنجکاو را از عواقب صاف و ساده بودن آگاه کرد به خاطرشان آورد که شیطان عادت بدی در به کار بردن حیله های کار دارد تا آدم های را گیج و آشفته کند به آنها ثابت کرد که برای تشخیص تفاوت بین یک اقاب و هواپیما وجود بال نمی تواند ضروری باشد آنها حتی از تشخیص فرشته ها آجز بودند با این همه قول داد که نامی به اسخف خود بنویسد تا نیز به سرسخف به و سرسخف نیز به پاپ اعظم تا فتوای نهایی را از دادگاه عالی به دست آورد دوراندیشی او در قلبهای بیروح و سترون اثر نگذاشت خبر فرشته گرفتار با چنان سرعتی منتشر شد که پس از چند ساعت حیات مثل بازار مکاره شلوخ شد و آنها مجبور شدند که برای متفرخ کردن مردم که کم مانده بود خانه را رو سرشان بگذارند دست به دامن سربازان مجهز به سرنیزه شوند الیزندا که از فرت جارو کردن آتاشقال های آن بازار مکار مهره های پشتش عیب کرده بود ناگهان این فکر به سرش زد که حیات را نرده کشی کند و از هر کسی پنج سنت ورودیه برای دیدن فرشته بگیرد مردم کنچگاه از دور دست آمدند کارنوالی سیار با بندبازی پرنده از راه رسید که بالای سر جمعیت چند بار هم همهم کنان چرخ زد اما کسی به او توجه نکرد چرا که بالهایش بالهایی یک فرشته نبود بلکه تقریباً بالهای افثانهی و آسمانی بود وقت برگشتهترین ترین آدمهای علیل روی زمین در آرزوی بازیافتن سلامتی خود به آنجا آمدند زن بیچاره‌ای که از زمان بچگی زربان قلبش را شمرده و دست آخر شمارها ته بود مردی از احالی پرتغال که نمیتوانست بخوابد زیرا سر و صدای ستارگان خوابش را میآشفت. خوابگردی که شبها بلند میشد تا هرچرا که به انگام بیداری رشته بود پند بکند و انبوهی دیگر که بیماریشان به انددازی آنها جدی نبود. و در میان چنان بینظمی که به بینزظمی کشتی شکستگان می ماند و زمین را به لرزه در میآورد، پلاو و لیزنده خسته در منده و خوشحال بودند، چرا که در کمتر از یک هفته اتاقهاشان را از پول انباشتند و از صف زائرانی که منتظر نوبت بودند همچنان تا آن سوی افق ادامه داشت تنها فرشته بود که در نمایش خود نقشی نداشت تمام وقتش را صرف راحتی خود در آن دانه آریتی می کرد. اما از آن گرمای دوزخی چراغهای نفتی و شمهای نظری که در سراسر قفس گذاشته بودند منگو کلافه بود ابتدا سعی کردند او را وادارند کمی کوفته ریزه بخورد که مطابق تشخیص آقل زن همسایه غذایی بود مخصوص فرشتگان اما او نه به کفتها اعتنائی کرد و نه به غذاهای در خورپاب که توبکاران برایش می آوردند و آنها هرگز در نیافتند که بی او به غذا به سبب این بود که فرشته است یا به دلیل پیریش و دست آخر چیزی به جز هریره بادمجان نمی‌خورد انگار تنها فضیلت فوق طبیعی و آسمانیش به خصوص روزهای اول صبر و شکیبایی بود وقتی که مرغ‌ها نو کشمی زدند و انگل‌های ستاره‌ای را که به وفور میان بالهایش به چشم می‌خورد میچستند و شلهای پرهایش را میکشیدند تا قسمتهای معیوب بدنشان را با آن کار بیندازد و حتی دلرحمترینشان به طرفش سنگ پرت میکرد و میکوشید بلندش کند تا بتوانند او را ایستاده ببیند تنها وقتی توانستند او را از جایش بلند کنند که با آهنی که برای داغ گذاشتن گوزاله نر به کار می بردن را سوزاندند و چون ساعتهای متوالی بی حرکت و بیجان افتاده بود فکر کردند که مرده است همچنان که زمزم وار به زبان جادویی و کیمیا گرانه خیش سخن می‌گفت با چشمانی اشکبار و با تکانی شدید به هوش آمد و بالهایش را دوبار به هم زد و گردبادی از فضله جوجه ها و اوباری نقرگون و رگباری از ترس برپا کرد که به نظر نمی آمد از سوی این جهان باشد اگر چه بسیاری فکر کردن که واکنش نه از سر خشم بلکه از روی درد بوده است از آن لحظه به بعد مواظب بودن که آزردش نکنند زیرا بیشترشان درک می کردن که برد باری او بردباری پهلوانی، گوشه نشین و خلوت گزیده نیست بلکه بردباری است به آرامش پیوسته پدر زگا با ارائه دستور برای خدمه جلوی سبکسری جمعیت را گرفت دستور الامن این بود تا لحظه‌ای که در باری حوییت زندانی قضاوت نهایی نشده است بایستی صبر کنند. اما اداره پست روم، هیچ عجله‌ای نشان نمیداد. وقتشان را صرف این می کردن که کشف کنند که آیا زندانی ناف دارد یا نه یا لهجش شباهتی به زبان آرامی دارد یا چند دفعه میتواند روی نوک سوزنی بیستد و آیا صرفا یک نروژی که فقط بال دارد نیست اگر ماجرایی به موقع به های کشیش خاتمه نمیداد؟ این نامه های بیبو و خاصیت تا عبد رد و بدل میشد. ماجرا از این قرار بود که آن روزها در میان نمایش گوناگون نمایش سیار زنی را به آنجا آوردند که به خاطر سرپیچی از فرمان پدر و مادرش به روتیل مبدل شده بود ورودیه دیدن او کمتر از ورودیه تماشای فرشته نبود اما مردم مجاز بودند هر گونه سؤالی که درباره وضع غم‌انگیز او داشتند از او بپرسند و سرتابهایش را ورانداز کنند تا کسی درباریان آن حقیقت دهشت‌بار شک و شبهی برایش نماند. روتیل انگیزی بود به اندازه یک قوچ با سر دختری غمگین. به هر حال چیزی که دل آزار بود شکل و شمایل غریب و عجیبش نبود. بلکه پریشانی صداقت بود که در بیان جزئیات بدبختیش از خود نشان میداد. وقتی که دختر بچهی بیش نبود از خانه پدرش دزدانه در رفته بود تا به مجلس رقصی برود. پس از آنکه سراسر شب را وی اجازه رقصیده بود از میان جنگل به خانه برمیگشت که صدای رعد و برقی هوناک آسمان را دونیمه کرد، از میان شکافان برقی گردی بیرون جهست که دخترک را به انکبوتی مبدل ساخت. تنها غذای او کفت ریزه بود که ارواه خیر در دهانش می‌گذاشتند. چون این چشمندازی که آکند از واقعیتی انسانی بود و عبرت وحشتناکی که از آن حاصل میشد، نمایش فرشته متکبر را که حتی نگاه کردن به این انسانهای فانی را کسر شعن خود می‌دانست، از رونق انداخت بانگهی موجزه هم که به فرشته نسبت می‌دادند، نشان از بین و در همریختگی ریختگی ذهنی داشت مانند آن مرد کوری که بینایش را به دست نیاورد اما در عوض تا دندان درآورد. یا آن افلیجی که قدرت راه رفتن باز نیافت اما اقبال برنده شدن در یک مسابقه بخت آزمایی را پیدا کرد یا آن جزامی که از جای زخمهایش گلهای آفتاب گردان چوانه زد آن معجزات تسلی بخش که بیشتر شبیه وقت مسخره بود آنچنان از اعتبار کاسته بود که دست آخر تبدیل شدن آن زن به انکبود کاملا خردش کرد از این رو بود که پدر گنزگا از بیماری بیخوابی برای همیشه نجات یافت و حیات خانه پلایو درست مانند موقعی که سه روز باران آمده بود و خرچنگ ها توی اتاق خوابها راه افتاده بودند خلوت شد صاحبان خانه دلیلی برای افسوس خوردن و زاری کردن نداشتند با پولی که پسنداز کردند خانه دو طبقه ساختند با محتابی ها و باخچه ها و توری های بلند که خرچنگها نتوانند در زمستان داخل شوند و نیز جلوی پنجره ها را با میله های فلزی گرفتند تا از نفوذ فرشتگان جلوگیری کنند همچنین پلایو نزدیک شهر جایی برای پرورش خرگوش به راه انداخت و شغل نگهبانی مزارع را برای همیشه کنار گذاشت ولی زنده کفش های ساتین پاشنه بلند و لباس های جور و جور با رنگ های و غزهی خرید از همانها که روزهای یکشنبه بیشتر خانوم های متپرست میپوشیدند. لانه مرخا تنها جایی بود که هیچ توجهی به آن نکرده بودند اگر همان را میشستند دزد و, و فونی می کردند برای عزت و احترام به فرشته نبود بلکه به دلیل از بین بردن بوی گندی بود که به همه جا چسبیده بود و آن خانه نوساز را به خانه ای کهنه و زهوار در رفته تبدیل می کرد هوایل وقتی که بچه شروع به راه رفتن کرد آنها مواظب بودند که مبادا به لانه مرخا نزدیک شود اما کم کم ترسشان ریخت و به بوی گند عادت کردند و پیش از آن که بچه دومین دندانش را در بیاورد بارها برای بازی از همان جایی که تورسی رسی پاره شده بود توی مرغدانی رفته بود فرشته با بچه هم به همان اندازه غریبگی میکند که با آدم ها و موجودات فانی اما با این همه شیطنت آمیز ترین آزارهای من درآوردی او را به شکیبای سگی شبه ندیده تحمل می کرد. هر دو همزمان به آبد مرغان گرفتار شدند. دکتری که به مداوای بچه مشغول بود، وسوسه شد که به زربان قلب فرشته نیز گوش فرادد و دریافت چنان غش غش می کند و صدای سوت مانند از خود در و چنان در کلیهایش هم همه پیچیده که به نظرش محال آمد فرشته زنده باشد چیزی که بیشتر از همه مایه شگفتیش شد وضع بال‌های او بود بالهایش در آن اندام کامل بشری چنان طبیعی به نظر می‌آمدند که نمی‌توان سر در بیاورد که چرا آدمهای دیگر نیز بال ندارند وقتی بچه شروع به مدرسه رفتن کرد مدت ها بود که مرغدانی بر اثر باد و باران و آفتاب ویران شده بود فرشته مثل آدمی سرگردان و روبه مرگ خود را این سو و همین که او را با دست جارویی از اتاق خواب می‌رانند سر از آشپزخانه در میآورد. گاهی در یک زمان به نظر می‌آمد که در چند جا حضور دارد چون آن کانه ها کم کم این فکر برشان داشت که نکند همزادی دارد که میتواند در آن واحد در سراسر خانه خود را نشان دهد. ولیزاندا با اوقات تلخی و اختلال حواس فریاد برمی آورد که زندگی در جهنمی پر از فرشتگان وحشتناک است. به ندرت لب به چیزی میزد و چشمان باستانیش چون تیر و مه گرفته شده بود. که راه رفتن به تیرک های لانه مرغها میخورد. تنها چیزی که از او باقی مانده بود باقی منده پرهای لخت و اورش بود که به میده هایی میان تهی می مانست پلایا پتوی رویش انداخت و حتی از روی خیرخواهی گذاشت که توی انبار بخوابد و تازه آن وقت متوجه شدند که شب تبش بالا میرود و به زبان قدیم نروژی به گویی میپردازد آن شب یکی از محدود شبهایی بود که بسیار نگران شدند زیرا فکر کردند که فرشته در حال مرگ است و حتی عاقل زن همسایه هم نمیتوانست بگوید که با فرشته مرده چه بکنند باری با این همه نه تنها از بدترین زمستان زندگیش جان سالم به برد بلکه به نظر میآمد که با نخستین روزهای آفتابی حالش بهتر شده است روزهای متوالی در دورترین گوشهی حیات جایی که هیچ کس او را نمیدید بی هیچ جنبشی باقی ماند و در اوایل دسامبر در بالهایش پرهای گنده و سفت و سیخ مانندی شروع برد کرد مثل بالهای های سگ که بیشتر به نشانهای از بدبختی و بدبیاری شباهت داشت اما او باید به دلیل این دگرگونی بیشتر از همه واقف بوده باشد چرا که کاملا مواظب بود که مبادا کسی متوجه پرهایش شود مبادا کسی آوازهای دریاییش را که گهگاه زیر ستاره ها زمزمه می کرد بشنود یک روز صبح گلیزنده مشغول خرد کردن دسته پیاز برای ظهر بود ناگهان بادی که به نظر می آمد از سوی دریاهای آزاد می آید توی آشپزخانه پیچید آنگاه به سوی پنجره رفت و نخستین تلاش فرشته را برای پرواز دید حرکتش چنان نتراشیده بود که با ناخونه یاری شیاری در باخ چکند و با بال زدن های ناشیانش که در نور می و نمی توانست به پرواز در بیاید کم مانده بود که انبار را از جا برکند اما دست آخر توانست اوج بگیرد الیزنده نفسی به آسودگی کشید هم برای خودش و هم برای او وقتی که او را می دید که از روی آخرین خانه ها پرواز می کند و با بال زدنهایش خود را مثل لاشخوری پیر در هوا نگاه داشته است همچنان که پیازش را خرد میکرد او را تماشا میکرد و اینقدر چشم به او دوخت که از دیدش پنهان شد و آن لحظه دیگر موجب آزارش نبود بلکه ای بود موهوم بر بالای افق دریا